سکولاریته در فرهنگ ایران یا عروسی انسان با جهان با این گفتار زنجیری از گفتارها و سخنرانه ها آغاز می شود که در این موضوع است که سکولاریته در پرهنگ ایران تازگی ندارد بلکه ریشه عمیق در پرهنگ ایران دارد سکولاریته عروسی انسان با جهان است این ایده در همون بخش که آفرینش جهان به وسیله جمشید و ارمتهی که دو باشد به وجود می آید. که اینها با همدیگر با هم دیگر مدنیت را در جهان آفریدند. در این در این گفتارها باید مفاهیمی را که شما از فرهنگ ایران دارید تا اندازه دور بریزید برای خاطر این مفاهیمی است که بیشتر از آیین زردشتی گرفته شده است و این مفاهیم هیچ انطباغی با فرهنگ اصیل ایران ندارد دین زردوشتی یک روایت است از فرهنگ ایران اما فرهنگ ایران نیست این است که خواهشمندم این مفاهیم را با دقت با دقت مورد توجه قرار دهید و ببینید که به کلی بحث در باره چه هست حکوم اولین سخنرانی درباره این است که حکومت را باید از دین جدا ساخت تا وجدان انسانی آزاد و آفریننده بشود مسئله آزادی ادیان نیست آزادی مذاهب نیست مسئله جرسر از این هست مسئله آزادی وجدان است این وجدان انسانی در کجا کجای فرهنگ ایران ترک شده است با چه اصطلاحی در ای که حکومت از دین جدا ساخته نشده است وجدان آفریننده آفرین و آزاد انسان به کار نخواهد افتاد فرهنگ ایران به سرچشمه آفرینندگی در هر انسانی دین میگفت ببینید اصلا این کاربرد واژه دین به, به وسیله روشنفکران غلط است ایرانی چنین مفهومی از دین نداشته است ما در ایران در فرهنگ ایران با واژه دین که یک واژه ایرانی هست چیزی دیگری میفهمیدیم و پدیده دیگری می شناختیم دین خوئی و دینداری و دین برداری و دین مداری و اینها که همه بر پای معنای دین و مفهوم دین در اسلام و زردشتیگری و یهودیت و مسیحیت هست این بار فرهنگ ایران رابطه ندارد دین به چی گفته می به سرچشمه آفرینندگی در هر انسانی ده نه نه همون نی است ده ای چی هست؟ یکی به معنای آفریدن است یکی به معنای اندیشیدن است نی به زهدان گفته میشد به سرچشمه و اصل به زن نی گفته میشد چونکه دارای زهدان است میزاید این است که به سرچشمه زایندگی نی گفته می به معنای نو، نای نو آور یعنی سرچشمه نو و ابداع یا نای اندیشنده نای, نای اصل زایندگی و آفرینندگی و موسیقی بود نای در نواختن در سرود نواختن برابر هست با زاییدن یعنی به دنیا آمدن برابر است با جشن با موسیقی جشن بازه جشن یسنا یعنی سرود موسیقی از همین جا شروع میشه. به دنیا آمدن یعنی برای جشن آمدن زندگی در گیتی جشن چون ما کجا میخواییم بریم دنبال سکولاریت با این مفاهیم قلیق را که از این فلسفه و اون فلسفه برای ما پرتاب میکنند. در همین جا، در یک کلمه فرهنگ ایران سکولاریته رو میافرند سپس این نام را این نام دین را به آموزه هایی دادند که باید به با آنها ایمان آورد و با این ایمان گواهی بر آن داد که انسان سرچشمه آفرینندگی بینش نیست. این قلب حقیقت است. استواژگوونه کردن فرهنگ ایران است. ما با فرهنگ فرهنگواژگوونه شده ایران سر کار داریم. در واقع، دین جعلی باید جانشین دین حقیقی بشود امروزه باید در کشورهای اسلامی ایمان به این دین جعلی داشت الله جاعل دین است جاعل دنیاست جعل میکند تا حق به زنده بودن ما باید در کشورهای اسلامی ایمان به این دین جعلی بیاوریم تا حق به زنده بودن در آن اجتماع و حق و عضویت در اون اجتماع را داشته باشیم به عبارت دیگر باید به اون گواهی داد که من همیشه در زندگیم هم خواهم کوشید که سرچشمه آفریننده بینش و تازه نباشم نی نباشم نای آفریننده ایران به خدا میگو نای به وای ب به. نای ب به. آتش آتشاپروزی و من همی... باید گواهی داد من همیشه در زندگیم هم خواهم کوشید که سرچشمه آفرینندهٔ بینش تازه نباشم و بر ضد آفرینندگی خود پیگار کنم من آبستن به حقیقت نمی نمیشوم معنی این نی این بود زهدان بود انسان هر انسانی آبستن است هر انسانی حامله است این ایده است که مولوی هم بارها آورده است انسان انسان حامله ما انسان اقتصادی داریم انسان اجتماعی داریم انسان سیاسی داریم همه جور این انسان ها اکنومی کست ولی ایرانی میگوید انسان آبستن می شود انسان آبستن از سج از اندیشه ها آبستان می شود خودش افکار را از نو میزاید به همین علت هر من از این پسمی اندیشم با این مفهوم دین جعلی را که به ما اعمال کردهاند باید مشتق از آن آموزه باشد ما هیچ بحثی نداشتیم انسان باید تجربیات باید بگیرد خودش آبستن بشود به اونها و خودش فرزند نوع بیاندیش بیاندزد. حالا باید چی؟ نه من باید ایمان داشته باشم این دین است وقتی هر چی میاندیشم باید مشتق از آن آموزه باشد و برای درستی هر اندیشم بایستی گواهی از آن آموزه و یا کتاب بیاورم و وگرنه اندیشه که از من سرچشمه گرفته به خودی خود هیچ ارزشی به اعتباری ندارد این نفی ارجمندی به شرافت انسان است. با این دین که به ما میگویند، با این واجه دینی که ما به کار میبریم خودمان را از خودمان شرافت را سلب میکنیم از خودمان ارجمندی را سلب میکنیم از این پس من سرچشمه اعتبار رو مرجعیت پکری خودم نیستم باید همیشه به کتاب مراجعه کنم به این کتاب و مقدسی آن کتاب خود جداسازی دین جعلی از حکومت پس مسئله چیست؟ جداسازی دین جعلی از حکومت به هدف دادن دین حقیقی با حکومت هست مسئله این نیست که ما میخوایم رفت دین بکنیم ما این دین جعلی رو میخواییم از حکومت جدا کنیم. اون وجدان آفریننده خود را میخواهیم بسیج کنیم این دین است جمع دین جعلی و حکومت با هم جعلی سازی حکومت است جعلی سازی اجتماع است جعلی سازی سیاست است جعلی سازی اقتصاد است جعلی سازی حقوق است حکومت هنگامی جعلی است که از خرد مردمان سرچشمه نگرفته باشد دین جعلی یعنی دینی که استوار بر ایمان است حکومت را نیز جعلی و ساختگی می سازد. حکومت بر پایه این اندیشه می شود که انسان سرچشمه آفریننده است حکومت حقیقی بر این پایه می شود انسان سه چشمه آفریننده بینش. یعنی چی؟ یعنی بازگشت به داینا که به معنی بجدان زاینده و, و آفریننده در هر انسانی هست هر انسانی خودش دین دارد یعنی خودش فرد خودش آبستن به تجربیات و واقعیات و روی دادها می شود کسی به جای او می زاید. بازدائی رنسانس این نیست که اروپاییها به جای ما ما را بزایند رنسانس این است که ما خودمان با فرهنگ خودمان خودمان را بزاییم مسئله ما این نیست که خود را با دین جعلی که صده ها حاکم بر جامعه است سازگار و هماهنگ سازیم بلکه مسئله ما این است که دوباره دین حقیقی من را که همون ویزان زاینده و نو آفرین است در خود جوشان و فوران سازیم چرا ما باید کلمه دین رو زشت بکنیم این مفهوم دین در اسلام و یهودیت و مسیحیت و در زردوشتیگری به این معنا به کار برده شده است برای محکمه برای قضاوت برای قانون برای اینجور چیزها در فرهنگ ایران چنین نبوده است این واژه اصلش از ایران است چرا ما این ماجر را مفت از دست بده. چرا اون چیزی را که غلط فهمیدن، مسخ کردن، ما اون را معیار قرار بدیم. و حقیقت اون چیزی که واجه حقیقیست معیار قرار ندهیم. ما دین به این معنا میخوادیم. ما دین به این معنا داریم. وجدان آفرینند. این معیار ماست. بلکه مسئله ما این است که دوباره دین حقیقی من را که همون وجدان و زاینده و آفرین است در خود جوشان و فوران سازیم. مسئله بنیادی ما تضاد دین ایمانی و دین حقیقی یا وجدان آفریننده است. دین حقیقی بیان اصالت انسان بیان آفرینندگی انسان بیان خود جوش بودن بینش از انسان است. این دین یعنی سرچشمه آفرینش بینش در هر فردی در هر انسانی پوشیده است و کسی آن را نمیشناسد که به آن گواهی یا شهادت بده به دیگه کسی شهادت نمیده. من به تجربیاتم هر روز آبستنم به چی شهادت میدم کسی آن را نمیشناسد که به آن گواهی یا شهادت بده به دین حقیقی هیچ کس گواهی نمیدهد و نیازی به گواهی ندارد دین شما چیست؟ دین من و اصل آفریننده در من است این گواهی من به چیزی نمیدهم شهادت به چیزی نمیدهم انسان به چیزی گواهی میدهد که ثابت و سفت است و اون را میشناسد و حق ندارد اون را تغییر بدهد انسان به دین ساختگی گواهی میدهد که چیره بر اجتماع و آگاه بوده و انسان همیشه به آن تظاهر می کند. و به قول مشهور همرنگ جماعت می شود. و جامعه ای را که همه یک نباقت به ترن کردهاند اونیز می پوشد. و به در رفتار و گفتار و کردارش همیشه به ایمانش شهادت میداد. دین ساختگی را عرفا شریعت می نامیدند و دین حقیقت را دین حقیقی را حقیقت شریعت بهرتن باشد حقیقت بهر دل باشد مجبور بودن در ظاهر تظاهر بکنن به شریعت مجبور بودن اسلام است با شمشیر برنده شراغ هر کسی میرود زیستن در این دوتنش زیستن همیشگی ایرانیان در دروغ و ریا و نفاق بوده است همه اشعار اتار و مولوی حکایت درد و عذاب از این تضاد و تنش میکنه. این است که باید امکان پیدایش دین حقیقی یعنی سرچشمه درونی انسان از نو جوشان شود. بدین علت است که جداسازی حکومت از دین ایمانی و جعلی در باقی باز شدن و شکوفا شدن سرچشمه آفرینندگی بینش در هر است و بازگشت به دعنا تجربه اصیلی که در فرهنگ ایران از دین داشته اصمی باشد ما نمیخواییم راه دور برویم. ما این تجربه ای را که هزارها در ایران پرورده از دعنا یعنی از اصل آفریننده درون خودمون ما میخوایم به این برسیم چرا این را را بکنیم حکومت از دین ساختگی استوار بر ایمان رها ساخته میشود تا دین حقیقی که سه آفریننده بینش از خود انسان از هر فرد انسان است نیرو به حکومت برساند حکومت از این پس از شیغه جان و بج... جان و وجدان زاینده خود انسان تغذیه میگردد این است که دین ساختگی از این جا به جا شدن میترسد و خطر وجودی خود را در میابد ما آری دین خو هستیم برای خواهد که هم اسم بهمن است خومن همون بهمن است تا اصر آفریننده خرد دنیایی در هر انسان ما اصل دین خوب به معنای این هست که اصل آفریننده بینش را در خود ما اصل زاینده بینش را در خود فرد ما داریم این فرهنگ ایران بوده است به این معنی دین خوب بوده است نه به اون معنای اسلامی نه به اون معنای یهودی چرا, چرا ماها به بف... از فرهنگ خود به فرهنگ خود ما نمیبالیم چرا فرهنگ خودمان رو نمیخواهیم بشناسیم مسئله این است که فرهنگ ما نیاز به مفهوم سکولاری که از قرب نداره انسان به محض اینی که آفریده میشود برابر نهاده میشود با جشن ورود در زندگی نایب، وایب، زاییدن برابر است با جشن یسنا سرود موسیقی یعنی yani چی یعنی yani جونیا جای جشن است زندگی باید تبدیل به جشن بشه